اللهم صل على فاطنة و أبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وأول محمد جن فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم مبارسه اون در سیاه بود یکی از کتاب بسیار مفید در این زمینه معجزات درمانی سیاه و اصل تو بحث فرهنگ سعیه تقضیه دکتر محمد دریایی متخصص علوم زیستی تغذیه و گیاهان دارویی. تو بحث سیاه دانه نام دیگرش مثل سیاه تخمه سیاه سنخ سیاه سرنیچ کممون اسود حبت و سودا شونیز شونز و کممونه هندین اسمایی دیگه هم بود که از اصار گیهان داروی احمد حاجی شریفی یا فرهنگ گیاهان ایران مهندس احمد ماهوان تو قسمت سین سیاه دونه و کتابای دیگه مؤمنا مثل محقق فاطمه اکبری تو بحث گیهان داروی و کتابای قدیم و جدید مؤمنا دیگه نگاه کنین از مخزن الادویه سید اسماعیلی قدیم بگیر مؤمنان تا تحفه حکیم مؤمن تا قانون اولی سینا جلد دوش یا قانون چیه چقمینی. و کتاب های دیگه مؤمنان ها از قدیم جدید آیت الله از جدیدی آیت الله مرحوم مصطفى نورانی در کتاب تب اسلامیش یا کتاب تبر رسول مصطفى آیت الله شیخ عباس تبریزیان حفظه الله تعالی تو کتاباشون فروع کافی تو بهار جلد 66 در مستدرک محدث نوری جلد 16 در جامع احادیس شیعه آیت الله مزما برجزیه قم 29 و کتابای دیگه مؤمنه چه چروایه چه غیر روایی حالا مباحث بحث کمنل اسود و حب سودا و حبته سودا و اشونس رحمه بابایات اومده مطالب گفته شده سیاهدانه گایی خودروه گایی زراعه سیاهدانه مزروه، یک گیاهی علفی و یک ساله پوشیده از کرک ظریف و برگ های تقسیم شده با بریدگی های خیلی عمیق به طوری که برگ رو به صورت تعدادی نوار باریک در رنگ, بر... رنگ برگ سبز قباریه گلهاش منفرده برگچهاش زیر گل درشته به رنگ آبی یا به رنگ سفید گل برگاش خیلی کوچیک و به شکل سر چپقه اصطلاح دودیا به شکل سر چپق دانه های سیاه دانه و سیاه ها. و با فشار اندک بوی مطبوعی از آن استشمام میشه اما در مجاورت هوا زود باکتریای قارچی میشه و در نور شدید خورشید یا نورای شدید پروجیکتور یا لامپای دیویس به بالا یا لامپای نکمدادی مدادیا زود مؤمنا گاز سمی خردل تولید میکنه و ایجاده آس و برونشیت حاد و مزمن میشه لذا این مسائل امنیتیش هم باید چکا کرد رعایت کرد حالا این چیزایی که یه مختصر گفتم اینا به اصطلاح مؤمن گیاهی مرفولوژی گیاهی یا ریخت شناسی ریخت شناسی گیاهی کم توضیح دارم اما سیاهدانه وحشی یا سیاهدانه دشتی گیاهی علفی یک سال خیلی کوتاه برگهای آن شبیه سیاه دانه مزروع با تقسیمات باریک نخیه گلهای آن آبی با خطوط سبزرنگ رنگ دانهاش بیزی شکل مسلسی شکل به رنگ سیاه و به ابعاد یک تا دو میلی متر می باشد این گیاه اغلب در مزارع قلات و در نقاط متروک همه جای دنیا رویش داره از جمله در ایران اسلامی مناطق آذربایجان مناطق شمالی شمال لوشان در کشورهای دنیا مثل مناطق اروپایی مثل آفریقای شمالی مثل آسیای صغیر و آسیای مرکزی میرویه حالا طبیعت از نظر طب سنتی طب مکمل آلترناتیو طب دیاهی این سیاه طبیعتش گرم و خشکه اما خیلی گرم و خشک مصلحه طبیعت گرم و خشکش چیه؟ کتیرای خوراکی پس کسانی که گرم مزاجن یعنی همیشه ای سال بدنشون داغه کف دست پاشون هم داغه هیچ بیماری زمینه ای ندارن باید زیاده روی در خوردن سیاه دانه کنه. کل بدنشون شروع میکنه دونه زدن و حالت کهیر اینجا حتما از مصلحش که کتیرهای خوراکیه باید استفاده کنه. سیاهدانه از خانواده زیره نیست گرچه در ظاهر شبیه سیاهدانه می میباشه و در بعضی خصوصیات شبیه همه سیاه دانه که به سیاه تخمه میگن به خاطر دانه و گل اون مورد کشت و بهرهبرداری قرار میگیرد مخصوصا حوضه دریای میدیترانه محل اصلی این گونه گیاهان بوده که پس از گسترش مصارفش در پزشکی کشت آن در غرب در قرب آسیا و جنوب اروپا مخصوصا کشورهای حوزه بالکان گسترش یافته در کتب اسلامی و کتابهای سنتی نامهای شنیز و شونز و در احادیث نبی مکرم اسلام و حضرت زعرا و دوازده امام معصوم در احادیث چهارده معصومین هم به همین نام حبت سودا همچنین از شونیز آمده حبت سودا هم هست ها در زبان فارسی هم تحت عنوان شه شونیز شهر شونیز آمده ادبیات فارسی قدیم فارسی را پاس بداریم رنگ دانه های سیاه دونه سیاه و همین علت سیاه دانه یا سیاه تخمه بهش میگن در بعضی کشورها کراو یا سودا یعنی زیره سیاه میگوین گرچه سیاه دانه زیره سیاه نیست اصلا باهم فرق میکنی در بعضی کشورها الکمون الاسمرو با سین الكمون در کشور مصر میگن حبة البرکه در کشور یمن قهطه با حجی میقاف تدست دار در زبان یونانی منطقه یونان بالکان تا بیا به اسپانیا و ایتالیا افرادی که تو قسمت های یونانی زبان هستن پاپیروس پاپیروس گویند گیاهی است در سواحل نیل در کشور مصر و در زمان قدیم از آن ورقهای کاغذمانند مانند ساختند و روی آن مینوشتند متنی که روی پاپیروس نوشته می شود به نام پاپیروس مشهورم هست حالا روی این برگ هایی که از آثار باستانی در اومده برگ های پاپیروس توسط دانشمندان مصری زبان قدیم در زمان فراعنه تایید شده استفاده از سیاهدانه در مصارف پزشکی رساب به نام های شنقت یا در زبان لاتین تقللون باقی تقللون حالا برای شناخته زبانهای متنوع عربی زبان لاتین، زبان یونانی، زبان هندی، زبان مصری یا زبان ترکی مومن و تحفه حکیم مؤمن محمد مؤمن حسینی ها میکن شما تحفه حکیم مؤمن رو متعلق از علمای بزرگشی که خیامون خاکی آخوند خراسانیم، هم دفنه وسط فلکه به زبان های مختلف فرانسه و انگلیس و با لحجه های مختلف عربی اینها هم آمده دکتر حسین میر حیدر هم تو کتاب معارف گیاهیش آورده اون هم متعلق حالا مومنان ترکیبات مختلف چیا در درست شده این آنها بمونه مطالعه کنید در طب نبوی و طب العمه علیه همه و سلام این بزرگواران مطالب زیادی دارم مثلا آیش گوید از پیامبر اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم شنیدم که اللهم صل على محمد وعلى محمد که پیغمبر اکرم می‌فرمودند به راستی سیاهدان درمان و شفای هر بیماری جز مرگ است الا سام الا اجل حتمی حتی در روایات دیگر از اهل تسنن در کتب صحیح بخاری صحیح مسلم ابن ماجه نسائی تبرانی باز به همین مضمون نقل شده و بر سیاهدانه درمانی و اثر مثبت آن بر درمان کلیه بیماریها تاکید شده عنس بن مالک از رسول الله صلى الله و وسلم نقل میکنه که محمد محمد محمد محمد یک شخصی از یک بیماری که ظاهرا انتصاب نفس نزد پیامبر شکایت کرد بلندی نفس انتصاب بساد انتصاب نفس یا بلندی نفس نفس طولانی یا تنگی نفس ضیق النفس یا آسم به نوعی از انواعشه مثلا آسم خفیف یا آسم متوسط یا آسم شدید اینجا اختلاف معنا هست در انتصاب نفس که با صد نمش انتصاب حالا یه شخصی پیش پیغمبر شکایت کرد از انتصاب نفسش حضرت به او فرمود مقدار کمی سیاهدانه در کف دست بریز و آن را با آب و اصل میل کن او چنین کرد و بهبودی یافت. ابن قیم میگوید طب تب نبی مانند طب سایر پزشکان نیست زیرا تبابت پیامبر امری مسلم و قطعی و خواستگاه آن وحیه روزا مسرون از خطا و اشتباه اینم که امین وحیه پیامبر امین و خواستگاه آن وحی و برخواسته از نور علم نبوت و کمال عقلانیت در صورتی که تبابت پزشکان چه گیاهی چه غیر گیاهی چه شیمی درمانه چه غیر شیمی درمانه همه شاخه‌های های علوم پزشکی و پیراپزشکی پزشکی داخل خارج کشور در صورتی که تبابت پزشکان یعنی پزشکان غیر معصوم هر چندم خوب باشن ولی بر اساس تئوری و گمان و تجربه و آزمون و خطاست یعنی بحث حس و تجربه است که یک ثومه علمه نریه توضیحات ما حاشی ما بر بندگان خدا در روایت دیگر نقل شده روزی یکی از انصار به پیامبر اعز کرد ای رسول خدا همسایی دارم که از درد شکم ناراحت بوده رنج میبرد اجازه میفرمایید او را معالجه کنم حضرت فرمود با چه چیزی میخوایی او را درمان کنی گفت در این نزدیکی یک طبیب یهودی هست که میتواند او را معالجه کند حضرت فرمود چگونه گفت شکمش را میشکافت یعنی جراحی شکمش را میشکافت و چیزهایی که موجب ناراحتی او شده بیرون میآورد یعنی تومور، فده، کیست بیرون میآورد پیامبر اکرم در هم کشید یعنی چهرش. این روایتشو آیت الله شیخ عباس تبریزیان در طب بر رسول مصطفی جلیه یک بحث امراض همین روایت رو ده صحیح سند و سنده مختلف فکره پیغمبر بعدش من پیامبر روی هم کشید و چیزی نفرمود آن شخص چند بار سوال خود رو تکرار کرد بالاخره حضرت فرمود آن چرا که میخوایی انجام بده البته این حالا یه جولی فرموده شاید نقلش از اهل تسننه خدا دکتر محترم اما اونی که تو روایته که آیت الله شیخ عباس تبریزیان آورده پیغمبر می اصل بخوره اصل رقیق شده بخوره بعد چند روز اون رفیقش میاد میگه حاجقا این رفیقم به حرفت گوش نگرد رب بشه اون یهودیه که دکتر یهودیه حضرت فکره هر باست پیغمبر رو در همچی نرحب روایت اتاری هم. حالا دیگه نگاه کنید تو بر رسول مصطفی آیت الله عباس تبریزیان جلده یک شخصی خدمت امام صادق علیه السلام از که صدایی در شکمم می پیچد و ایجاد درد می کند بحث قرقره های شکمی بحث دل پیچه مقصن و قرار قرار دو چیزا نیم غین صاد یعنی دلپیک قرار قرار قرار شکمی به روده حالا اینجا ترجمش اینجوری فرموده صدایی در شکم میپیچن و ایجاد درد میکنن حضرت فرمود اینان همه روایتش خوندم هم تو تبل معصومین دکتر لبی بیرون حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن چرا سیاه دانه و عسل نمیخوری به فرمایش معصوم عمل که از حالش هم خوب شد این هم قابل عرض داخل خارج کشور یکی عرق نعنا میده یکی نمی دارم قطره یا محلول گرمی چهر میده یکی دیگه محلول گرایپ واتر میده یکی هم داروشیمیه یا قطره دایمیتیکان فعال شده یا قرص دایمیتیکان قابل عرض داخل و خارج کشور به همراه غذا چار زیره بخور بعد قضا یه قشن چای سیادونه زرفت زیاده زیاده کمخونی دارین حالا اون سیادونه رو با اصل بخور کاسبی تعطیل میشه همون تبابت کنید نه تجارت در طب صادق امام جعفر ابن محمد حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند در سیاهدانه شفای هر بیماری هست ما از سیاه استفاده میکنیم از برای درمان تب، درمان سردر، درمان ورم چشم، درمان درد معده و هر درد دیگری استفاده میکنیم مثلا بعضی میان مومن ها کل بدنشون ورم داره بعضی همیان صورتشون یا چشماشون تف میکنه ورم داره بعضی میان دادها و ورمهای زیرزانو دارن تا مچ پا که پای خودش تو کف شدن پای خودش نمیره داروی همه این ها یعنی زد دل آرام حتی ورم‌های کبد ورم کلیه ورم تحال زد دل آرام طبیعی چیه؟ سیاهدانه حبت سودا دعاش به جون امام صادق علیه صادق و سلام کنیم کلیات خواست درمانی سیاهدانه اگر سیاهدانه بخور در آب شود مخلوط با آب بجیشونین بخورشو تنفس کن. هم محرکه هم بادشکنه هم قاعده آوره این قابل عرض که هم مثلا قرقره های شکمی دارم هم ورم دارم با اینکه کم کمکاری تیروید هم نداره و هم این که مثلا مدتی چند ماه یا چند سال قاعدیگیش هم قطع شده یعنی حالت بیماری زنانه آمنوره اولیه یا آمنوره سانویه دارم. یکی از داروهای مهمه در پیشگیری و درمان آمناره یعنی قطع اقاعدگی چندین ماه یا چندین ساله خانوما سیاه دونه به جون امام صادق کسی که ضعف عمومی بدن داره یا تو نگفتیم با اصل بخوریم هم قوت کمره هم درمان ضعف عمومی، هم کمر لقیت خوب میشه اگر مرد باشه تونتون شیتون زده نمیشه. اگر زن باشه دوچار لکبینی نمیشه. به استحاض شویی که ندونه چی چراق قرمزه که چراق سرزه. ندونه چجور نماز بخونه. ندونه چجور روزه بگیره. هم خودش الاف هم شوهرش از اون الافتر. هم استطلاعات کچه بازاریه. یا <تصفيق> دیگه. <تصفيق> <تصفيق> سیاه دانه که مصرف بشه برای ترمیم ضعف بدن رفع مسمومیت های خونی مخصوصا وقتی که با عسل مصرف بشه رفع مسمومیت های خونی کسانی که از بزرگی کبد و ورم کبد رنج میبرن تو بسای فوق تخصصی نفرولوژی نفریت یعنی ورم گفتین امام صادق میگه زده ورمه زده اورامه نه اینا فوق تخصصی نفرولوژی نفر ریه به خودم دوزیدم اینجوری بلغه رو خب نفریت یعنی ورم نفرولوژی یعنی ورم شناسی که قبلا امام صادق هم اون قربو شعر لفظی میکنه حرفای خودمون به خورد خودمون میده به اسم علم از قبل خزان علم فرمودن ما محتاجه اصول به داخلی خاریسان یا طب داخلی نلسون یا فیزیولوژی گایتون نیست که شما برداشتین کتاب های مرجع دانشگاه قرار داریم. رفع مصمومیت های خون همچنین درمان بزرگ بودن کبد. اونا میگن چی؟ هپا یعنی کبد. ایت یعنی بیماری التحابی هپا تیت. یعنی بیماری التحابی کبد. یعنی که حرف خودونه ندلفوازی و رفع تهوع بحث تهوع اوغ زدن استفرا یکی از ضد تهوع های قوی چیه مؤمنان همین سیادون حبت سودا کسانی که شکم درد دارن یادتونه گفتم دل پیچه تو روایات میگه مقصن تو تبل المصومین گفتم اینا درس هاش پارسال گفت سیادون یک داروی طبیعه زده دلپیچه زده مقصن بعد اونجا امام معصوم علیه السلام فرمود یک داروی قوی ترش دیگه چیه؟ الجاز گردوی مقصفخت گردو رو با پوسش میذاریم تو آتیش یا بالا بخاریم یا تو زغار پخت که شد بعد میشکنیمش مقصشه میخوریم یکی در تا بخوریم مقصن خوب میشه دلپیچه های شدید خوب میشه حتی مؤمنان سیاهدانه در درمان یوبوسط مفیده حتی خانوما پس از زایمان یکی از مقویهای تقویت کننده زنانی که دارای خون نفاس یعنی خون بعد از زایمان و دوچار ضعف عمومی به خاطر خون زیاد دوچار افسردگی هم هستن و بیماری دل قایه همجور باید حرف میزنه گریه می گریم کن. هم کمخونی شدید هم فشخونش پایینه در همه این موارد اسلام علایی هم میگه اولین قضا برای این خانمی که بچهش به دنیا آمده بعد از زایمان اولین خوراکیش رتب باشه خورمای تازه فتصاقت علیک رتبا جنیه اگر دارویی بهتر از خرمای تازه بودا خدا تو قرآنش میگفت و میفرمود برای حضرت مریم مقدس از باب اینکه اسمت قاهره دارد و بتول است که تو روایات شیعه میفرماید اولین بتول از حیث زمانی زمان خلقت جسمی حضرت مریم علیه السلام است و بتول دیگر که نور چشم ما و همه جهانیان در دنیا و آخرت است حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سیدت نساء العالمین بنت نبیه این هم بتوله چون هیچ گاه خون حیز و نفاس ندیدم همیشه طیبه طاهره معصومه چقدر آدم چقدر احمق باشه یا چقدر نابخرد باشه یا چقدر هواپرست و مقام پرست و جاه و پول پرست و اهل خیانت پیشیگی باشه بیاد به دختر پیغمبر آزار برسه این نشونه حماقت و خباست آدمه حالا تو هر مقتی از تاریخ باشه چه بعد از رحلت رسول الله باشه چه در آخر زمان باشه اگر میخوای انسانی زندگی کنی یا پس حماقت خباست در بیا خیرخواه بشر چهارده معصومه حتی تو رو یاد داریم این مثلا اولو العزم منر رسول چرا اولو العزم منر رسولم یکی علمشون از سایر انبیاء و مرسلین بیشتره دوم کتاب مستقل دارم که مکمل ادیان گذشته است سوان چون که از همه انبیاء و مرسلین بیشتر حضرت زهرا رو دوست دارم کسی که دوست حضرت زهرا نباشد و اطاعت از فرمایشات حضرت زهرا نکند او ضد خدا و ضد رسول خدا عمل کرده اصلا مسلمون نیست مثل من فیگور اسلام ابو صفیانی می گیرن برو آدم باش تا در دنیا و آخرت با آدم ها محشور شوی. چه معصوم آدم آدمه؟ اطاعت و تو از آدم معصوم بالا بر تا آدم زندگی کنی و آدم محشور شی. نه اینکه حیوانی زندگی کنی و روز قیامت حیوان محشور بشی نه بدیهیات اسلامه. عقل مستقل میگه و احکام شرع ارشادن الی حکم العقل پس برای تقویت زنان پس از وضع حمل تجویز می شود خوردن سیاهدان با عسل در 24 ساعت یک قاشق مرباخوری اما خوردن بعد از هر وعد غذا هفت عدد خورما چند خوبی برای این حضرت خانومی که بچهش به دنیا آمده داره یک این مادر زودتر از خون نفاس پاک می شود. دو سبب ازدیاد شیر در سینه مادر می شود هم برای خود مادر خوبه که پیشگیری می کنه از تومورهای سینه و در آینده مبتلا به سرطان سینه نمیشه. شود سینه نمی گیرن. همسه بچه شیر کم نمیاد بچه محتاج شیر خشک نمیشه چندین خوبی داره هم دوچارم کم خونیه پیش رفتم ناموست نمیشه که لکه بینی چند ماه طول بکشه یا از خون نفاس دیر پاکشه ده روزم بگذره بعدش هم استعازه متوسطه و کثیره و قلیلو مبتلا اینا هم نمیشه خیلی مهمه معامل هم تو کتاب های ها برای ازدیاد شیر مادر در سینش و هرمون لکتوجن بیشتر نیاز داریم خورما یکی از بهترین داروهای طبیعی که باعث و بانی ازدیاد هورمون لکتوجن در دستگاه گردش خون مادر اینم حواشی ما بر فرمایشات این دکتر محمد دریایی برای تقویت زنان پس از وضع حم سیاهدانه تجویز می شود و خاشیه بزن به شرطی که با اصل بخورد نم حاشیه بزن خب کسی که خون زیاد بوده دچار سرد مزاجی آرزی می شود. و یکی از عوارض کمخونی و افت فشار خون ایجاد بیماری افسردگی یا سرماخوردگی روانی ایجاد بیماری دلنازکی که یکی از اقسام چهارصدگانه بیماری روانی دلنازکی سوم ضریب استراب و دلحورش هم بالا میره اینم یکی دیگر بیماری روانی شما که هفت عدد خورما بعد هر قضا میذاری که تو رو آیات شیه و سالشیه جلوه میگه بعد هر قضا هفت خورما چند منظور عمل کردی با کمترین حزینه قربون امام صادق من برم بیشترین بهترین فایده رو بهش میرسونی با کمترین حزینه یک قاشق مرد بخوری سیاه دانه با اصل شبا قبل از خواب میخوره بعد هر غذاش هفت خورما میخوره صبح یا یک لیوان شیر اثر یا یک لیوان شیر خورما یا یک بشقاب حلیم گندمگوش میخوره نه مادر آسیب می میبینه نه بچه اگر مادر ذاتن گرمزاج باشه متابولیسم بازالش زیاد باشه تو جیره غذایی مادر چیزای خنک کننده میزنیم مثل کاهو بدون سس. مثل لیمو شیرین مثل ترنجبین تو جیره قضایی مادر تو جیره غذایی مادر که به بچه بدیم جیره قضایی مادر اینجا شیره مادرم خونک میشه خود مادرم خونک میشه اگه بدنش دونه یا کهیر نمیزنه همچنین یکی از خواص درمانی سیاه دانه رطوبت‌های اضافی بدن رو خشک می کنم. از حیث بلغمی مثل مکوس یا از حیث رطوبات اضافی مغز پشت پرده مننج یا اینکه تجمع مایات اضافی بافتی زیر پوس یا ازولات و مانند او همانطور که گل استخدوس و افتیمون مناسب است. از دیدگاه طب مکمل و طب سنتی از دیدگاه طب اسلامی و روایات اهل بیت اسمت و طهارت یکی از فواید سیاه چیه؟ پیشگیری و درمان کننده رطوبات اضافی بدن حالا میخواد خلتی باشه؟ میخواد مخاطی باشه؟ میخواد تجمع مایات اضافی بافتی باشه؟ یا طرف سعدمزاجی باشه که رتوبات زیاده خب اینجا مبتلا میشه به شبه فلجی ها یا صرفه های خلتی. یا معده لیز یا روده لیز مخاطی تصارف هم بودیم ها؟ یعنی مطفوعش مخاطی میشه سیاهدانه با اصل که تو جیره قضایی این افراد باشه همه این بیماری که شما دم برطرف میشه دیدین با کمترین هزینه بیشترین نوع درمان با کیفیت اینم بر توبت ها را خشک می کند کسانی که سرفه دارن اقسام سرفه داریم اما صرفه هاشون ناشی از سرد مزاجیه جنتیکیه طبشون سرد مزاجه یا سرد مزاجیه آرزیه به خاطر کمخونی شدید و فشار خون پایین یکی از داروهای مهم در درمان صرفه های سرد صرف مصرف سیاه دونه با اصله کسانی که تشنگی کازب دارن استسقا یک نوع بیماری هم است بیشتر در کسانی که بیماری های متابولیکی دارن مثل خون و چربی خون اینا این تشنگی های کازب میان میگه ها پارچ پارچ آب می‌خورم، بازم تشنم دارود چیه مومنان سیاه دونه یک کفلمه سیاه دونه بخور راحتون اندازه گودی کف دست به اصطلاح امروزی ها یه قشن مرب بخوری سیادونه بخوری حالا این سیادونه رو با اصل بخور اصل طبیعی هم سربیتول داره قندخون بالا نمی بره نظیر میوه های گلابی آلو بخارا هویج زد که هویج رسمیه جزر و همچنین گیلاس این چهار میوه هم سربیتول داره هفتاد دست در بدن انرژی میشه گلوکوز قند خونم بالا نمیبره بره گرگون چارده برم و خدای خالق خوبی ها که بهترین امامان خوبی ها و ولایت حقه رو آفریده و در اختیار و دسترس بشر قرار داده برا پس این سیاه حبت سودا برای تسکین سلفه های سر و بیماری استسقا و بیماری یرقان مخصوصا گریدر یکش نوع یکش هپاتیت نوع آ و ناراحتی‌های های تحال سپرس گفتیم ورم تحال ورم کبد دو چیز قولنج بحث کلیت کلیت روده یا کلیت مختلف همچنین قولنج های نفخی اض زیاد گاز معده بشه، روده ای باشه یا قراقرای معدی باشه. که گاهی نفس طرف بند میاد، شما می نفس تنگی داره، با اینکه نفس تنگی نداره. گاهی درد میاد تو جدار جناق سینش و بین دو کتف پشتش، شما میگید ناراحتی قلبی داره، با اینکه نارتی قلبی نداره. از شدید نفخ شکم تو هم با از زیاد اسید معده داره. اما خیال میکنه که مثلا آنژین صدری داره. درد منتشره تو قفسه سینه خیل کنه آنجین صدری داره. یا دوچار چی مومنه؟ نارهتی قلبیه. لذا پیچه یه متخصص متعهد که مراجعه کنه. میگه عمو جان این از میده ته. برو مادته درست کن. پرخوری هم نکن. کم تحرکم هم نباش. حالا تو پزشکی اسلامی اینا که همه رو فرموده که عمو جان. خیرو ما تداویتون بهی الماشی. بهترین دارویی که خودتون رو با اون مداوا کنید پیادهروی آرام در سطح مستوی در هوای آزاده یا خیرو ما تداویتم بهی المشیه با تشدیدو بهترین داروی که خودتون رو با اون مداوا کنید کسایی که تنبلی روده بزرگ دارن کسایی که مندگاری فضولات در رکتم و راست رودشون زیاده که آب بیشتر از دست میده مطفوع و مطفوعشون خشک میشه کسانی که مؤمنا هم, هم کسانی که بعضی اختلالات دیگر گوارشی دارن مثلا رودل میکنه سردل میکنه خب در همه این موارد چیه مؤمنا؟ میگه پرخوری نباشد بدخوری نباشد کم تحرکی نباشد اضافه وزن نباشد خب اینجا میگه کارکن استفاده کن اگر با تشدید رو خونیم میشه کارکون. میتونه ملین باشه؟ میتونه مسهل باشه؟ گرفتین معاملات چی که یک روز ملین ها, ها رو توضیح دادن اگر کسی جنینش نارسایی دارد به ای که قابل علاج نیست مثلا جنین مرده حال بریم جراحی مثلا کرتاش کنیم یا سزارین کنیم برای اخراج جنین مرده یا میشه با سیاهدانه و اصل جنین مرده رو خارج کرد پس یکی از آثار مثبت سیاهدانه چیه؟ اخراج جنین مرده از رحم مادر بدون کرتاش بدون سزارین اگر کسی زایمانش مثلا میخواد کرتاج نشه سزارین نشه زایمانش هم سخت نباشه محلول سیاه دانه با اصل بخوره و خارج کردن جنین سالم بعد از نه ماه انتظار حالا تولد فرزند دل چه کاکل پسرش چه ناز, ناز دخترش که به دنیا میاد بعد از نه ماه انتظار اما اگر کسی بخواد سخت جنین اینا کنه حوامه ها همچه قلطی نکن چه داخل کشور چه کشور سخت جنین حرامه و از ضروریات اسلامه قرطی مرتی گری نکنید پول پرست هم نباشید کارای کسی هم نکنید نظیر زنا که بعد بخوای گناه دیگه هم انجام بدید که قتل نفس محترمه باشه که هر دوش از گناهان کبیر است چه زنا چه قتل نفس محترمه که جنین سالم و آدم عمدن سخت جنین کنه هر دوش حرامه هر دوش گناه کبیره مثل آدم ازدواج قانونی شریع کن مثل آدم بچه داشو به اندازه کافی افراد شرور در جای جای جهان هستند. تو دیگه بچه شلخته ولنگار یا بچه شرور درست نکن اینم مؤمنه یک مختصر از فواید سیاهدانه اگر کسی خلط اضافی دارد در حلق یا پشت حلق اینجا 25 گرم سیاه سیاه‌دونه رو با 100 گرم عسل مخلوط کنه و روزی یک قاشق غذاخوری از این مخلوط بجوه و بخوره برای رفع خلط مانده در بدن مفیده حتی کسانی که درد های پشت سر دارند یه بار درد پشت سر تا ملاج درد میگرنی اونجا گل راعی، گل ساعتی گل بهار نارنج بهترین دارو است کمک به این بهترین داروها استفاده از سیاه‌دونه با عسل یه بار دیگه دردهای پشت سریش تا ملاجش به خاطر بلغم زیادیه یعنی به خاطر مکوس زیادیه اینجا همین داروی که گفتم برای درمان بلغم زیادی یعنی سردرد ناشی از بلغم اضافی چیه؟ مفیده نخصوصا کسانی که تو سن بلغمی هم گرفتیم چی شد؟ اگر کسی درد کمر دارد ناشی از ضعف بنیه یا کمر لقی یا بیماری ارق نسا یعنی بیماری سیاتیک رنج میبرد اگر به مدت چهر روز هر روز نصف استکان آب جوشانده سیاه دانه مخلوط با اصل بخورد درد کمر کمر لقیش و ارق نسایش خوب میشه نیازی به جراحی موضعی یا استراحت مطلق نیست بلکه بار سنگین بر نداره کفش پاشنه بلند نپوشه پیاده روی طولانی نکنه ورزش‌های سنگین مثل وزنه برداری فوتبال کونوردی و مانند اینها نداشته باشه فقط فهمید 16 دستور رعایت کنه اللهم صلی محمد فاده محمد عجل کارچه.